گل روزه کچک ماجراهای که تو این داستان میخونید تو روزگارای قدیم اتفاق افتادن. اگر این ماجراها اتفاق نمی افتاد، هرگز این داستان هم گفته نمیشد. داستان مربوط به زمانهایی میشه که گرک ها و برراها با هم دوست بودند و کداره هم توی آغل زندگی میکردن. چوب روی چمنزارهای ساحل دریاها و روونه همراه با پادشاه ها و شاهزادهها غذا میخورند اون زمان مردی زندگی میکرد که حالا ممکنه صد سالی داشته باشه، شاید هم صد و 120 سال. همسر این مرد هم خیلی پیر بود. اما سنش چقدر بود؟ خودم هم نمیدونم. اما شنیدم که، بعضی سن اون رو هم اندازه سن الهی ونوس حد زدن. این زن شوهر با هم خوشبخت بودن. اما خوشبختی اونها با داشتن یه بچه کامل میشد. هر هرچند که اونها پیر بودن اما آرزو میکردند که کاش یه بچه داشتن. اونا بارها و بارها کنار اجاق آتیش می نشستند و درباره این موضوع که اگه چند تا بچه داشتن، اونا رو چه تربیت و بزرگ میکردم با هم حرف می زدن یه روزی از روزها که پیرمرد خیلی گرفتهتر و قمگین تر از روزای قبل بود رو بزنش کرد و گفت گوش کن پیرزن بخوای درباره چی حرف بزنی از سوی اون صندوقچه برام یه مقدار پول بیار چون میخوام به یه سفر طولانی برم تمام دنیا رو میخوام بگردم تا شاید بتونم بچهای پیدا کنم وقتی فکر میکنم که بعد مرگم تمام زندگیم دست یادم غریبه میفته قلبم میگیره. در ض اینم به بگم که اگه من نتونم بچه ای پیدا کنم هرگز بر نمی گردم. بعدشم پیر مرد کیسه ای برداشت اون رو پر از آزوقه راه و خرج سفرش کرد اون رو روی شونش انداخت و از زنش خداحافظی کرد و رفت پیرمرد برای مدت طولانی آواره و سرگردون به اینجا و اونجا میرفت ولی نتونسته بود بچه ای پیدا کنه اما صبح یکی از روزها وقتی که بی هدف مسیری رو در پیش گرفته بود و میرفت از یه جنگل انبوه و پر از درخت سر در آورد که حتی نور خورشید هم نمیتونست از بین شاخه‌های انبوه درختا به داخل جنگل بتابه پیرمرد از دیدن این مکان عجیب و ترسناک سر جای خودش میخکوب شده بود. اولش وحشت کرد، نمیخواست وارد جنگل بشه. اما با به خاطر آوردن یه ضرب المثل که همیشه چیزای غیر منتظره سر راه آدم سبز میشن و با این فکر که شاید وسط این جنگل تاریک موفق به پیدا کردن یه بچه بشه، به خودش دل و جرأت داد که وارد جنگل بشه. پیرمرد برای مدت طولانی داخل جنگل پیش رفت. سرانجام به یه قار رسید که فضای اطراف اون حتی تاریکتر از خود جنگل بود. اون دوباره ایستاد. اما یه چیز ناشناخته اون رو وسوسه بس می کرد که به داخل قار بره. پیرمرد در حالی که قلبش به شدت می تپید قدم به داخل قار گذاشت. چند دقیقه سکوت و تاریکی مطلق داخل قار اونو چنان هراسان کرده بود که سر جای خودش ایستاد. جرعت نکرد حتی یه قدم دیگه برداره. اما خلاصه با هر زحمتی که بود به ترس خودش غلبه کرد و چند قدم دیگه هم برداشت و جلوتر رفت. یه دفعه یه حاله ای از نور مشاهده کرد. دیدن این روشنایی باعث شد نور امیدی به قلب پیرمرد بتابه. پیرمرد به سمت روشنایی به راه افتاد و سرانجام هم کنار اون نور کاهن سالخورده ای رو دید که ریش سفید بسیار بلندی داشت و روی زمین نشسته بود کاهن سالخورده انقدر غرق مطالعه ی کتاب بود که متوجه حضور پیرمرد نشد پیرمرد برای مدتی طولانی کنار کاهن ایستاد عاقبت زانو زد و به کاهن گفت صبح بخیر پدر مقدس اما انگار که با یک صخره سنگی داشت حرف میزد کاهن حتی سرش رو هم بلند نکرد. دوباره پیرمرد با صدای بلندتری اون رو صدا زد. این بار کاهن با اشاره دست به اون فهموند که نزدیکتر بیاد. کاهن با صدای بسیار ضعیف بهش گفت: "چی تو رو به این مکان تاریک و ملال‌آور کشونده؟" از آخرین باری که من با یه انسان ملاقات کردم، صدها سال میگذره. فکر نمی کردم دوباره ممکن باشه که من بتونم آدمی زادی رو اینجا ببینم. پیرمرد جواب داد. راستش در موندگی و فلاکت منو به اینجا کشونده. آخه من هیچ بچه ای ندارم. در تمام طول زندگیم، من و همسرم در اشتیاق داشتن یه بچه داریم میسوزیم. به همین دلیل من تصمیم گرفتم خونه و کاشونه خودم رو به خاطر پیدا کردن یه بچه رها کنم. کاهن سال خورده بعد از شنیدن حرفای پیرمرد مرد سیبی رو از روی زمین برداشت و به اون داد و بهش گفت این سیب رو از وسط نصف کن. نصفش رو خودت بخور و نصف دیگه شم به همسرت بده. حالا مزجای خودت بلند شو و دست از در به در بردار و به خونت برگرد. مرد دست پدر مقدس رو بوسید و با خوشحالی از غار خارج شد. بعد از گذشتن از اون جنگل تاریک، سرانجام به دشت سرسبز رسید. خیلی احساس تشنگی میکرد. نگاهی به دوروبرش انداخت، اما خبری از چشم موجود بار نبود. لبهاش از شدت تشنگی ترک برداشته بود. گلوش خیلی میسوخت. یه دفعه پیرمرد به یاد سیبی افتاد که کاهن پیر بهش داده بود. تشنگی انقدر عمونش رو بریده بود که های کاهن رو فراموش کرده بود. به جای خوردن یه نیمه ی سیب، همه ی اون رو خورد و بعدش هم روی زمین دراز کشید و به خواب سنگینی فرو رفت. وقتی پیرمرد از خواب بیدار شد، کمی دورتر کنار ساحل یه ای انبوهی از گلهای های روز سورتی رنگ رو دید. خیلی شگفت زده شده بود. چشماش مالید و دوباره با دقت به ردیف گله های روز نگاه کرد. از جاش بلند شد و به سمت اونها حرکت کرد. بین اون گلای رز روز سورتی دختر بچه ای رو دید که رنگ پوستش هم مثل گلای رز روز سورتیه. پیرمرد دختر بچه رو در آغوشش گرفت. اما کودک انقدر آروم و ساکت بود اصلا احساس بیقراری نمیکرد بعد از چند لحظه دختر بچه خوشحال و شاد به هوا میپرید و پیرمردم در حالی که از شدت شادی سر از پانه میشناخت لباسش رو دور بدن اون کودک پیچید و با تمام قدرتی که تو پهاش داشت به سمت خونش برافتاد. افتاد وقتی پیرمرد نزدیک کلبش رسید دختر بچه رو توی سطلی که دم در خونش بود گذاشت و بعد هم با عجله به داخل کل برفت و فریاد زنان همسرش رو صدا میزد. زد. اجره کن خانم برات یه دختر رو وردم. موهاش تلایی رنگه. چشماش مثل ستاره ها برق میزنه و می پیرزن بعد از شنیدن این خبر حیرت آور، با عجره از پله ها پایین اومد تا این گنج گرانبها ها و باور نکردنی که همسرش براش آورده رو هر چه زودتر ببینه. اما وقتی پیرمرد اون رو به طرف سطر بولد داخل اون سطر هیچ چی نبود. پیرمرد از خودش بیخود شد. با ترس عجیبی که تو دلش افتاده بود به پیرزن نگاه میکرد. پیرزن بیچاره روی زمین نشست و های های گریه میکرد. اونو وجب به وجب اون اطراف رو برای پیدا کردن دختر بچه گشتن. چون فکر میکردن شاید دخترک از توی سد بیرون اومده و یه جایی مخفی شده تا کمی سر به سرشون بذاره. اما هیچ اثری از اون پیدا نکردن. پیرمرد با درموندگی و بیچارگی گفت این دختر بچه کجا میتونه رفته باشه؟ چرا من اونو تنها گذاشتم؟ شاید همراه پریار رفته باشه. یا شایدم یه جونور وحشی اون رو با خودش برده. دوباره پیرمرد مرد و پیره زن بیچاره جستجوی خودشون رو از سر گرفتن. اما اون اطراف نه پری دیدند و نه جونور وحشی. آقبت هم دست راست سر و با قلبی پر از غم و قصه به کلبشون برگشتن. اما چی به سر اون دخترک اومده بود؟ حالا بشنوید از اتفاقی که برای اون دختر بچه افتاده دخترک که بیچاره وقتی خودش رو تو اون مکان عجیب تنها دیده بود از ترس گریه میکرد اقاوی که تو اون لحظه تو آسمون در حال پرواز بود با شنیدن صدای گریه های کودک به سمت اون صدا پرواز میکنه بعد از دیدن کودک گریون به گمان اینکه شاید گرسنش باشه فورا به سمت اون شیرجه میزنه و کودک رو به چنگالهاش میگیره و توی یه چشم به هم زدن به هوا بلند میشه بعد از مدتی اقاب خودشو بالای درختی که بالای اون لونه ساخته بود بعدش هم دخترک رو میون جوجه‌هاش میذاره و دوباره از لونش خارج میشه جوجه اقابها از دیدن این موجود عجیب و غریب خیلی تعجب کرده بودن یه دفعه به سمتش حمله بر می شدن. اما اونا به جایی که اون رو بخورن دورش حلقه زنن و بالهاشون رو برای اون دخترک باز و بسته میکردن تا از گرما یا آفتاب در امان بمونه. و سطح جنگلی که اقاب بالای یکی از درختاش لونه ساخته بود رودخونه از اونجا رد می که آبش سمی بود. تو ساحل اون رودخونه یه مار هفت سر زندگی می کرد. این حیولا بارها اقاب رو دیده بود که بالای درختی که لونش رو ساخته پرواز می کرده و برای بچه هاش قضا می گرده. حیولا جوجه اقاب ها رو کاملا زیر نظر داشته. تا اینکه روزی برسه که جوجه ها شروع به تمرین پرواز بکنن و این حیولا بتونه اگه مادر جوجه اقاب ها تو حوالی مراقب اونها نبوده از فرصت استفاده بکنه و جوجه اقاب ها رو شکار کنه. هنوز جوجوگاب ها از دنیای بیرون و خطراتی که اونها رو تهدید میکرد خبر نداشتن. اما اینو میدونستن که یه روزی نوبتشون میرسه و میتونن وارد دنیای بیرون بشند و بر فراز درخت و زیر نور خورشید پرواز کنن. اما یه شب هیولای هفت سرخ که خیلی گروس شده بود صبرش لبریز شد و تصمیم گرفت سراغ جوجوگاب ها بره. نیمه های شب بود. هیولا خشخش کنن از سوی روتخونه بیرون اومد و به سمت درخت دراه افتاد. دوتا چشم آتشین و دوتا زبون سوزان لحظه به لحظه به جوجه اقابهای که تو گوشه ای از لونه وحشت زده کس کرده بودن نزدیکتر میشد. اما درست لحظه ای که زبون آتشین نزدیک جوجه اقابها رسید هیولا فریاد دردناکی کشید و به پشت از بالای درخت روی زمین افتاد. وقتی که روی زمین افتاد صدای نبرد بلند شد. تنهی درخت هرچند که از وزش باد هیچ خبری نبود به شدت تکون می‌خورد. جوجه جوج هم بیشتر از هر لحظه ی دیگه هراسون شده بودند، فکر کردن که آخرین لحظات عمرشون دیگه رسیده. اون اصلا فقط دختر بچه آروم و با خاطر یاسوده توی لونه خوابیده بود. صبح روز بعد اقاب مادر به لونش برگشت. پایین درخت ها و آثاری از نبرد رو مشاهده کرد. گوشه و کنار درخت هم تکه های پر جوجو اقاب ها شده بود. وقتی اقاب مادر لاشه حیولا رو روی زمین دید با خوشحالی به سوی لونش پرکشید. اقاب مادر از جوجه هاش پرسید چه کسی این حیولا رو کشته؟ تعداد جوجه ها انقدر زیاد بود که مادرشون حتی متوجه غیبت دوتا از جوجه عقاب‌هام که هیولا اونها رو خورده بود نشد. اما جوجه عقاب‌هام جواب دادن که اونا چیزی از ماجرا خبر ندارن. فقط خطر جونشون رو تهدید میکرد که تو آخرین لحظات نجات پیدا کردن. همون لحظه نور خورشید به داخل لونه تابید و موهای تلایی رنگ دختربچه رو که گوشه ای از لونه خوابیده بود نورانی کرد اقاب مادر با خودش فکر کرد که شاید ورود این کودک به لونش خوشیام نوده و حتما نیروی سهر و جادوی این کودک بوده که هیولا رو از بین برده اقاب مادر بچه هاش گفت بچه ها من این بچه رو برای شما آورده بودم تا اون رو بخورید اما شما نزدیکش هم نرفتید معنی این کارتون چیه؟ جوجاقاب ها سکوت کردن همون لحظه دختر بچه چشماش رو باز کرد و صدها برابر زیباتر از زمانی که خواب بود به نظر می رسید. از اون روز به بعد گل روز کوچیک، درست مثل شاهزاده خانم های کوچیک زندگی می کرد. اقاب مادر اطراف جنگل پرواز می کرد و نرمترین و سبزترین خزه ها رو برای اون جمعآوری وری می کرد تا اون نرمترین و راحتترین جای خواب رو داشته باشه. بعد هم زیباترین و رنگین ترین گلها رو از بالای کوهستان ها میچید و برای تزئین کردن بستر خواب شاهزاده خانم می آورد محل خواب گله روز کوچک ما اینقدر زیبا و نرم شده بود که حتی زیباترین پریا هم حسرت داشتن یه چنین جای خوابی رو داشتن وقتی هم که جوجه عقاب ها بزرگ شدن و تونستن پرواز کنن مادرشون به اونها یاد داده بود که از کجا میتونن میوه های خوشمزه برای گل روز بیارن. روزها به دنبال همدیگه می اومدند و می رفتن. هر سال گل روز کوچیک بزرگ و بزرگتر میشد. اون از زندگی کردن توی لونه اقاب خیلی راضی بود و حاضر نبود اونجا رو ترک کنه. گل روز کوچیک از سوی لونه نور خورشید رو تماشا میکرد از از صحبتی با پرنده ها لذت می برد. ها با اون همبازی می شدن. سالها سپری شد و گل روز کوچیک به سن 14 سالگی رسید. صبح یکی از روزها پسر امپراتور به قصد شکار از قصرش خارج شد. ناگهان گوزنی رو دید که از پشت درختی بیرون اومد و پیش پای اون شروع به دویدن کرد. شاهزاده بلافاصله به تعقیب گوزن پرداخت و سرانجام هم سر از اعماق جنگلی در آورد که پای هیچ آدمیزادی به اونجا نرسیده بود. درخت انقدر اینقدر انبوه و جنگل اینقدر تاریک بود که شاهزاده لحظه‌ای توقف کرد و گوشهاش رو تیز کرد تا شاید صدایی بشنوه. اما سکوت مطلق بود. هیچ صدایی شنیده نمیشد. شاهزاده بی حرکت سر جای خودش میخکوب شده بود و نمی‌دونست که آیا برگرده یا بره جلو. اما وقتی سرش رو بالا گرفت، از بالای یه درخت برند یه باریکه نور به طرفش تابید. شاهزاده از لای اون نور تونست جوجه هایی رو ببینه که از توی لونشون به شاهزاده زل زده بودند شاهزاده تیری تو کمانش گذاشت و به سمت اونا عدف گیری کرد اما قبل از اینکه تیر رو رها بکنه دریچهٔ نور دیگهای به چشمش تابید اون نور انقدر خیره کننده بود که شاهزاده کمانش رو روی زمین انداخت و بعد هم چشماش رو با دستش پوشون زمانی که شاهزاده دستهاش رو به آرامی از روی چشمش برمی گل روز صورتی متلایی رو دید که بالای درخت نشسته و به اون نگاه میکنه. اون اولین بار بود که با یه انسان روبرو شده بود. شاهزاده با صدایی بلند گفت چطور میتونم خودم رو به تو برسونم؟ اما گل روز صورتی لبخندی زد و سرش رو تکون داد بعد هم به آرامی توی لونه نشست. وقتی شاهزاده دید که دسترسی به اون غیر ممکنه تصمیم گرفت که برگرده و از این جنگل مخوف خارج بشه. اما آیا شاهزاده دوباره میتونست به این جنگل بر نگرده؟ چرا که اون پسر یه امپراتور بود؟ به خاطر همین شاهزاده با تمام وجودش آرزوی دیدن دوباره گل روز رو کرد. اون بار دیگه به امید پیدا کردن گل روز به جنگل برگشت اما بخت باش یار نبود. و موفق نشد که گل روز رو ببینه و غمگین و افسرده به سمت خونش برگشت. امپراتور که از علت افسردگی و تغییر رفتار پسرش بیخبر بود پیش اون رفت تا از موضوع با خبر بشه. شاهزاده پیش پدرش اعتراف کرد که گل روز کوچیک تمام و عقل اون رو برده و بدون اون هرگز سهم خوشبختی رو نمیچشه. اول امپراتور با شنیدن این حرفا خیلی درخور شد. اون تردید داشت که آیا دختری که بالا یه درخت زندگی میکنه میتونه همسر شایسته ای برای شاهزاده باشه یا نه. اما از اونجایی که امپراتور پسر خودش رو خیلی دوست داشت به اون قول داد که تمام تلاش خودش رو برای پیدا کردن اون دختر به کار میگیره. به خاطر همین صبح روز بعد امپراتور سپاهیان خودش رو آماده کرد و اونها رو به گوشه و کنار سرزمینش فرستاد. تا از مردم درباره دختری که توی جنگل و بالای درخت زندگی میکنه پرس کنن در ض پاداش خوبیم برای کسی که خبری از اون دختر بیاره در نظر گرفت. اما متاسفانه هیچکس از وجود چنین دختری خبر نداشت همه یه اون سرزمین روی زمین خونه داشتن وقتی هم که اونها یاد زندگی کردن بالای درخت میافتن خندهشون می, خنده می گرفتفت و تعجب میکردن. دخترای اون سرزمین در حالی که این تصمیم امپراتور رو کسر خودشون می دونستن می این دختر عجب ملکه یزاب در بیاد. روزی که سپاه امپراتور تقریبا از جستجوی خودش برای پیدا کردن دخترک ناامید شده بودن، پیرزنی از میون جمعیت بیرون اومد و گفت من از محل این دوشیزهی که توی جنگل و بالای درخت زندگی میکنه کنه با خبرم. اما سپاه امپراتور بعد از شنیدن حرفهای پیرزن خنده بلندی سر دادند و گفتند اون دیوونه است بهش گفتن آی اجوزه پیر از اینجا برو وجود تو اینجا شغل نداره اما پیرزن محکم و استوار در مقابل اونها ایستاد و گفت من توی این سرزمین تنها کسی هستم که میتونم محل این دختر رو به شما نشون بدم فرمانده سپاه دستور داد که پیرزن رو داخل کارسکی سوار کنند و ا نزد امپراتور ببرن و بالاخره پیرزن به قصر برده شد امپراتور به پیرزن گفت گفتی که از محل این دوشیزه خبر داری پیرزن جواب داد بله الی حضرت من حقیقت رو گفتم میتونم اونو به اینجا بیارم پادشاه هم بهش گفت اگر که اینطوره هرچه زودتر اونو به اینجا بیار پیرزن جواب داد اما قبل از هر چیز یه کتری و یه سپایه باید به من بدید امپراتور دستور داد که همه اون وسایل رو برای پیرزن آماده کنند پیرزن کتری و سپایه رو برداشت و اونها رو زیر بغلش زد و به همراه تعدادی از سربازای امپراتور که جلوتر از اونها خود شاهزاده هم در حرکت بود از قصر خارج شدند وقتی پیرزن راه میرفت کتری انقدر تکون میخورد که صدای طرق همه یه فضای جنگل رو پر کرده بود. پیرزن هم با خودش میگفت عجب سر و صدایی. انگار یه گروه کولی تو حرکت بودن. خلاصه بعد از مدتی به جنگل رسیدن. پیرزن دستور داد که همهشون متوقف بشن. بعد خودش تنها وارد جنگل تاریک شد. پیرزن زیر درختی که دخترک بالای اون زندگی میکرد ایستاد و یه مقداری شاخه خوش جمع کرد و با اونها آتیش روشن کرد. سپایه رو روی آتیش گذاشت، بعد هم کتری رو روی سپایه. اما پیرزن هر کاری که می کرد، کتری روی سپایه قرار نمی گرفت و آخرش هم می افتاد روی زمین. همون موقع گل روز کوچیک که از بالای درخت شاهد این صحنه بود، از حماقت پیرزن لجش گرفت و گفت: سپایه رو باید روی زمین صاف بذاری، نه روی زمین ناهموار. بهتر جای سپایه رو تغییر بدی. پیرزن در حالی که با یه دست سپایه رو گرفته بود و با دست دیگش کتری رو سرشو بلند کرد و گفت اما دخترم این سپایه رو باید کجا بذارم؟ گول روز کوچیک کاملا کلافه شده بود. جواب داد مگه نگفتم این کار تو فایده ای نداره؟ بهتر آتیش رو پای درخت درست کنی و بعد هم کتری رو از یکی از این شاخه ها آویزون کنی. پیرزن کتری رو از روی شاخه کوچیکی آویزون کرد همون موقع شاخه شکست و کتری روی زمین افتاد پیرزن دوباره به دخترک گفت کاش خودت پایین می اومدی و یادم میدادی که چجوری باید این کارو انجام بدم. دخترک خیلی سری از تنه درخت سر خورد و پایین اومد کنار پیرزن ایستاد تا روش کار رو بهش یاد بده اما تو همون لحظه پیرزن دخترک رو گرفت و به سمت هاشیه جنگل دوید جایی که شاهزاده بی انتظارشون رو میکشید. وقتی شاهزاده اونها رو دید، به طرفشون دوید و دخترک رو از پیرزن تحویل گرفت. بعد هم شاهزاده لباسهای زربافت بافت و گرانبهایی رو تن دخترک کرد. موهای اون رو با جواهرات نایاب آراست و سوار بر کالسکه سنتی به سمت قصر امپراتور حرکت کردند. سه روز بعد مراسم ازدواج اون دوتا برپا شد. همه اهالی شهر زیبایی همسر شاهزاده رو تحسین می کردن. و از اون به بعد این حرف هم به سر زبونها افتاده بود که هرکس طالب یه همسر زیبا و شایسته است باید اون رو بالای درختا جستجو کنه کانال تلگرامی هزار افثان داستان های افثانه ای سوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه نشانی ویبلاگ ما ام BFA نقط مهران دوستی. blogva.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.